تزام درخیش می جوشم مقدمه روزه 40 روزه این سه سال است و اگه میخوای فردا شبی که شب اربعین خوب بد گریه بدن خوب بد رزق ناله بدن امشب برای این سه ساله باید سنگ تموم بذاریم می دونید چرا اینو میگم باب وروده به روزه زینب روزه این سه سال است آخه نمیدونید این داغ با دل زینب چی کار کرد داغ این سه سال کمر زینب رو خم کرد همه داغ های این سفر یه طرف اما این داغ نمیدونی چه الای هیچ وقت امانت دستت ندن الای هیچ وقت برادرت از دنیا نره بچه هاش دستت امانت بیفتن سخت آقا سخته بیخود نبود وقتی رسیدن شهر شام همه از زینب سوال کردن همه حرفا رو زد همه روزا رو خوند حسینم رو کشتن آب ندادن سر بالا نیز رفت همه حرفا رو که زد دیدن یه آه بلند کشید بد گفت اما رو غیب یعنی داغ رو غیه چیز دیگه است جانم جانم عشق ناله زمزمه نشون میده مستمه زنده است اینم بدون تو مجلس عبی عبدالله اگرم عشق نداری عیبی نداره صدا تو خرج کن نفس تو خرج کن این نفس تو زهرا میخره یه جوری ناله بزن فردا قیامت. اگه جلومونو گرفتن گفتن چی او به بگو بی, بی جان چیزی ندارم فقط هر جا تو مجلس حسین رفدم هر بار دیدم دارن ناله میزنن منم صدامو نیگر نداشتم صدامو رها کردم. خوش با حالونایی که توی معرم سفر صداشون گرف آخه صدای زینبم گرف صدای زینبم این همه گریه کردین این همه نال زد حالا روزه این دختر آروم آروم با این غزل میرم جلو ببینم چیجور جور مشدری هستی امشب اگه مشدری بودی منم جنسم رو میفروشم ز غم در خیش می جوشام ز درد و غصه لبریزم ریزم فقط حواست باشه یه دختر سه ساله داره روزه می خونه ز غم در خیش می جوشام ز درد و غصه ریزم و مثل ا هر شب از نگاه مه می ریزم چرا کم کن خاب بشه اینجا راحت گریه کنی دیگه ذ غم درخیش می جوشم. درد و غصه لبریزم و مثل عشق هر شب از نگاه ام میریزم شما تاید تنب تو خدای دختر داغ دیده یتین بدون بابا جبرئیل به پیغمبر نازل شد کف یا رسول الله. الله, الله من خیلی بعضی اوقات به آدم و به انسان قبت میخورم من جبرائیل. پیغمبر گفت تو بهترین ملک خدایی تو امین وحی خدایی تو به انسان قبطه میخوری گفت آره برای اینکه که انسان ها رو این زمین چند تا عادت و عاداب دارن ما فرشده ها تو آسمون نداریم چی دارن؟ کبریل شروع کرد شمردن و آدابی دارن انسان ها که ما بهش غبطه میخوریم چیه یکی یکی شروع کرد شمردن مجلس علم شما دارید ما نداریم صدق دادن شما دارید ما نداریم تشیه جنازه شما دارید ما نداریم نماز جماعت شما دارید ما نداریم غسل و دفن و برادر مؤمنه انسان ها دارن ما ملائه که نداریم بعد مکسی کرد گفت اونی که ما خیلی دوست داریم اینه شما انسان ها اکرام یتیم دارید ما نداریم شما یتیم ببینید نوازش میکنید یتیم ببینید احسان میکنید اما ما نداریم یتیم احسان داره نوازش داره آره والله و هم یتیم میبینه باید نوازش کنه زغم در خیش میجوشم زمز درد و غصه لبریزم و مثل عشق شب از نگاه امه میریزم بابا بابا زبان حال و دل بده ها شماتت تعنه اظهار کنیزی بزم نامهرم همه خود شاهد این روز و شبهای غم انگیزم بابا بابا زمینی گل پاها. مرنج از من مرنج از من نشد در مقدمت از جای برخیزم ای بابا این همه جمعیت باید نالش در و دیوار و بلرزونه خوشبه اونایی که عشق دارن ناله دارن زمزمه دارن دختردارا امشب بیشتر گریه کنن دختردار میدونه وقتی بابا از مسافرت بیاد دختر دیگه سر از پا نمیشنسه بختر میگه مادر بهترین لباسو تنم کن قشنگترین لباسو به من بپشون بابام ببینه میخوام اول از همه بابام منو ببینه امان امان برات این خاطره رو بگم و روزم همین سینه بزنیم هر کی گریه کرد نوش جونش سال هشتاد این کاروان رو که میووردن این استخونه و این جنازه ای که ای خدا به حق این سه سالب هر پدر و مادری که هنوز منتظر بچه شه هر پدر و مادری که هر وقت میره گلزار نمیدونه سر قبر کی بره امشب به این خانوم از انتظار بیرونشون بیار میگه رسیدیم اطراف خرم آباد تریلیا دارن تابوتا رو میارن مرتبه دیدیم جلوی ماشین شلوغ همه دارن زدجه میزنن اگه دختر شهید تو جلسه هست اگه دختر بی بابا هست منو ببخش شاید این حرف من زخم دل تو تازه کنه یه اومدم جلو دیدم یه دختر خوابیده جلو لاستیکای ماشین نمیذارم تکون بخوری چی شده من اسم بابامو تو این تابوتا دیدم من به دنیا نیومده بودم بابام رفته تا بابامو نیارید پایین من بابامو باید ببینم بعد میذارم بریم نمیذارم بریم هرچی التماس بش کردن دخترم عزیز دلم. اینا میره تهران تقسیم میشه دو روز دیگه جنازه ها میاد نه من باید بابامو ببینم شاید زنده نموندم میگه جوری دختر گریه میکرد همه با گریش گریه کردن تابوتو گذاشتن زمین پرچمو کنار زدن یه مرتبه در تابوتو باز کردن دیدن یک جنازه کوچیک نه سه چهار تا تیکه و خون گذاشتن بعد از چارده پونزه سال این بدن رو آوردن این دختر کفن رو باز کرد دختر داره میدوند دختر عاطفی دختر یه زخم تو صورت بابا ببینه از خود بی خود میشه شروع کرد با این و سخونا حرف زدن در و دیوار و زمین و زمان باش گریه میکردن هی میگو بابا اومدی اما چرا این اومدی بابا این همه سال منتظر بودن گفتم من بالاخره بابا دارم آه. گریه کرد گریه کردیم خیلی داره خودش اذیت میکنه گفتیم دیگه بسه ازش جدا کردیم الله اکبر آب میشه آدم زوب میشه گفت حالا که میخواید بابامو ببرید یه خواهش دارم گفتیم چیه خواهشت گفت به من بگید استخونه دست بابام کدوم از این استخونه مهمون موندن این دختر میخواد چیکار کنه؟ او سخونه دست بابا تو میخوای چیکار؟ گفت به من بگید سخونه دست بابا کدومه میگه سخونه دست باباشو بهش دادن میگه کاری دختر کرد همه همون جا نشد زر رو زمین شروع کردن زار زدن میدونی چی کار کرد میگه ای اشتخون دستو گذاش رو سرش گفت آرزو داشتم بابام دست رو سرم بذار جانم جانم آرزو داشتم بابام دست رو سرم بذاره حالا به آرزوم رسیدم هر وقت مدرسه می دیدم دخترا اومدن دست باباشونو گرفتن می گفتم خدایمی یعنی میشه یه روز دست بابامو بگیرم اما نزی یتیمی آخ یتیمی درده تو هم شب روزه بنویسن یتیمی درده بی همه میگن یا نه مادرش داره میبین یتیمی خاریه آخ الهی تفل بی بابا نباشه اگه باشه تو این دنیا نباشه به سه چار روزم تمومه دل آسمان میل دارد ببارد خراب نشینی من گریه دارد گریه دارد گریه دارد آخ بمیرم بابا بیا ا تماشا چیانم نگویان چی دخترم بیا تا تماشا چیانم نگویان که این طفل بیچار بابا نداره بیا تا تماشا چیانم نگوین که این کفله بیچاره بابا دارد. چه دادت بابا سرنگشده دو ایک ولی اهل روزه قشنگ خودشون رو نشون بدن سرنگشده مشگل گشایم ضعیف است صالح چی میخواد بگه سرن گشده مشگل گشایم ضعیف است که خار از کف پای من در بیارد اخ بابا حسین ای تو بگم صدا بابا عجب عجب عجب روزگار عجیب و غریبیست چرا عجب روزگار عجیب و غریبیست یهودی مرا خارجی می شمارد ای حسین تو برای دختر خرچ کن ای حسین ای حسین سر و بغل گرف آروم شروع کرد با سر حرف زدن آخ بمیرم براد اول از همه چند بار هی گفت بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا لا لا الله روایت مقتل میگه هی hey, گفت ابا ابا ابا چرا گفت چرا گفت ابا چرا نگفت ابا هی hey, میگه ابا ابا ابا ای دختر دیگه نمیتونه از حرف بزنه یه نگاه کنید بابا یه دختر میبینه یه گوسفند سر میبرن تا دو روز حالش بده حالا من نمیدونم یه دختر سه ساله یه سر بریده تو بغل بگیره <تصفيق> اول از همه موای بابا رو نوازش گر بابا چرا موات خاکیه <تصفيق> بابا چرا پیشونید شکسته بابا چرا لبات خونیه لا اله علالله لا اله الله. آروم آروم لحن رو غیه عوض شد آروم آروم صدا اومد پایین تر دیگه صداش جوهری نداش گفت من الذي ای تمنی علا سغر سن. بابا کی دلش اومد من یتیم کنه من الذي خضه بشهی بکه به دماغ بابا کی دلش اومد تو غرق خون کنه هی وای محاسنو کنار زد میدونی نگاش به کجا افداد نگاش به هلغوم بریده افداد یه مرتبه دیدن رو ناله نال زد